پادشه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم افتد، پس آنگه زبانه به خسم رسد یا نرسد. نشاید بنی آدم خاکزاد که در سر کند کبر و تندی و با. تو را با چنین گرمی و سرکشی، نپندارم از خاکی، از آتشی. در خاک بیلغان برسیدم به آبدی، گفتم مرا به تربیت از جهر پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن فقی، یا هرچه خانده ای همه در زیر خاک کن.